اقدار پولی که وارد مملکت میشه چرخه اقتصاد به چرخه خب این خیلی مثبته و فضا رو به نوعی باز میکنه برای اینکه مردم بتونن به دنبال خواستهای دیگه شون باشن همون چیزی که شما در ارتباط مثلا حقوق بشر باش ازش صحبت کردین باز شدن فضای مدنی اجتماعی در جامعه خیلی کمک میکنه و این بسیار بسیار به نظر من مهمه و در این حال آقای روحانی یک نکته که خیلی مهمه به نظر من ندیدم دوستان رو این صحبت بکنه البته منم چون زیاد فکر میکنم این موضوع به ذهنم رسید اینکه آقای روحانی الان یک صد رو پشت سر گذاشته و همین مسئله ارتباط با قرب و کشورهای خارجیه الان حتی روحانی بنوان رئیس دولت وقت بیشتری رو داره برای اینکه به مسائل و سیاست داخلی مملکت بپردازه برای این مسئله سیاست خارجی واقعا مسئله نفسگیر بود ولی الان زمان به وجود میاد و به نظر من ما باید این رو براش ارزش بذاریم یعنی این قابل ارزش گذاریه و مسئله تحریم های ایران فقط این نیست که از روی اونا شد بلکه شما ببینید کشتی های ایرانی به دلیل مشکل بیمه نمیتونستن حرکت بکنن نمیتونستن وارد مناطق خاصی بشن و نمیتونستن کاری انجام بدن الان این مسئله بیمه کشتی ها و این تردید هم برداشتی میشه و این به نظر من بسیار موضوع مهمیه و این توافق هستهی ای به نظر من ضرورت بود باید میشد یعنی دیگه واقعا بیشتر از این یک جوری با منطق و بهم فشارهایی که برای مردم بود دیگه واقعا روان نبود من برای من جالبه که اپوزیسیونی که تا دیروز معتقد بود که باید این مساله هسته‌ای رو ایران تهدید بکنه ایران باید قنیزسازی رو کنار بذاره ایران باید وارد گفتگو بشه ولی امروز که عملا دولت وارد این گفتگو شد و این غنی سازی 20 درصدی رو میخواد کنار بذاره و در این حال از داشتن انرژی هسته هم محروم نشد برای اون پنج درصد رو میتونه تولید بکنه که به نظر من جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت در خواهر میانه و با حفظ استقلال سیاسیش پای میز مذاکره رفت کیانوشان جان و این مهمه و این باعث میشه که اینا بتونن جلو برن هرچند واقعا این 6 ماه من واقعا از پری روز دارم فکر میکنم به این چشمانداز 6 ماهه، با اینکه وقتی که صحبت‌های جدید رو به خصوص صحبت‌های آقای ظریف رو نمی‌دونن دوستان امروز یا دیروز خوندن، من متأسفانه بیرون بودم چیزی نیستم و دارم خونم امروز اخبار رو نگا نکردم، که آقای ظریف میگفتش که اونها به نظر میاد صداقت در گفتارشون قربانیان ندارن. البته این تجربه‌ای که جمهوری اسلامی کرده درتباط با همکاری جمهوری اسلامی در ایراق درتباط با همکاری جمهوری اسلامی در افغانستان که قرار شد اون چیزی که به رد بدل میشه بین اینها گوی غربی ها عمل نکردن اون تعهداتی که در مقابل اینها داشتن و اینها مسائل بسیار بسیار مهمیه. من فکر میکنم که اینکه ما بیست درصد رو متوقف کردیم اصلا مهم نیست باور کنید اگر نیروی خلاق و مدیریت باشه ایران میتونه از تمام انرژی ها استفاده بکنه و میتونه از انرژی باد آفتاب آفتاب بوند سوزان و خوزستان شما در نظر بگیرید واقعا میشه استفاده کرد و جلو در واقع ما جلو به نظر من جلو یک زرر گرفته شده و جلو زرر رو هر وقت که ما بگیریم واقعا منفته آره این ما مردم ایران شهر من خودم رو جز مردم ایران میدونم من خودم رو ایرانی میدونم و حفظ منافع و امنه منافع ملی حفظ تمامیت ارزی، حفظ اینکه جامعه ما بتونه یک جامعه آرام و مدنی جلو بره به نظر من این مثبته و برای من ارزشمند. بین علیله که من با این مسئله هستی ای، توافق هستی کاملا موافقم امیدوارم که در 6 آینده چشم انداز مثبتی داشته باشه و همونطور که گفتین از لحاظ اقتصادی وقتی که این تحریم‌ها برداشته بشه ببینید سرمایه وارد مملکت میشه تولید کار میشه و اینها به نظر من همه مثبت به با حتی به پاس شدن فضای معدنی کمک میکنه من فکر میکنم که الان زمانیه که فرصت هست یعنی من معتقدم که آقای روحانی صد درصد یک سری مسائل داخلی رو حتما خواهد کرد برای اون چی که عمده تری خواسته کسانی که با آقای روحانی رعی دادن همطور که شما گفتین آزادی کروبی و موسوی بود و الان فرصت هست برای پرداختن بینا یعنی اینا تو این مدت هم خیلی کار انجام دادن به نظر من حتی در سیاست داخلی کارهای انجام شد ولی الان زمان بیشتر است امروز دادگاه احمدی نژاد بود ولی احمدی نژاد در دادگاه حضور پیدا نکرد خب اینا نشون میده که اینا دارن کارهای خودشون رو انجام میدن یعنی باز هم مثبت و به نظر من مهم هم. الان از الان به بعد این چشمانداز شش ماه آینده است که ببینیم چطور میشه مرسی می از اینکه دادین که اون خوشحال شدم از شنیدن صداقت و نظراتت لطفون خدمت شما من هم درود میفرستم به دوستان و با تشکر از صحبت هایی که کیانوش عزیز و دوست قبلی کردن بله اینکه به توافق رسیدن چیز خوبی است اینکه به هر حال جمهوری اسلامی تن داد که این قرارداد رو امضا بکنه بله چیز خوبی است ولی باید برای ملت ایران این مسئله روشن بشه به چه قیمتی اینها از ابتدا مخفیانه این رو کار رو کردند تا الان بیش از 670 میلیارد دلار در واقع این برای این ملت و این مملکت هزینه برداشته چیزی که اگر از همون ابتدا علنی بود بر اساس نظر تمام کارشناسان اگر از کشورهای پیشرفته نه روسیه در واقع از امریکا و یا آلمان و یا ژاپن می گرفت، حتی اکثر 6 میلیارد دلار خرج داشت و اینها در واقع چنین هزینه ای رو روی دست این ملت گذاشتن و اه اه از چنین دولتی صحبت از این که منافع ملی ما رو در نظر گرفته من فکر می یک مقدار لابد از منافع ملی شاید ما نتونیم بدونیم چه چیزی هست و این که تحریم ها برداشته شده و البته اون که برداشته نشده چیزهای بسیار بسیار اندکی داده شده این هفت میلیاردی هم که قرار است تا این شیش ماه بده در واقع قرب آزاد کنه از پول خود ایران هست و هفت میلیارد دلار در برابر یک جمعیت هفتاد و پنج میلیونی پول توجیوی معمولی هم نمیشه بنابراین بله اصولا ما نیازی به نیروگاه های حسده ای نداشتیم کشوری که بالاترین گاز جهان رو داره یعنی الان یک سال هست بر اساس اون چیزی که در ایران کش شد بیش از روسیه ما گاز داریم و دومی نفت جهان در نتیجه که حالا انرژی های دیگر هیچ فعلا همین هایی که در زیر زمین هست ولی اینها چه کردن؟ این تصور که نظام اسلامی فضای باز مدنی و سیاسی رو بده به نظر من یک خیال خام هست اینها وقتی که جنگ تموم شد همه فکر می چون تجربه این سی و چهار ساله نشون داده همه فکر می که بعد از جنگ اولا وضع اقتصادی مردم بهتر خواهد شد و همه فکر می‌کردند فضای سیاسی باز بشه ولی اینها اون قتل عام رو در زندان‌های ایران کردند امروز آقای روحانی اعدام‌هایی که در این صد روزه به اصطلاح حکومت خودش کرده بیش از یک ساله گذشته است و همه اینها نشانه های این هست که آیا جامعه مدنی و فضای سیاسی باز خواهد شد یا نه خود رژیم چنین کاری رو نخواهد کرد مگر اینکه فشار مردم باشه همونطوری که فشار غرب اینها رو وادار کرد که تن به امضا بدن و تمام شواهدی که الان در دست هست شما اگر فقط متن قرارداد رو بخونید میبینید تمام اینها چیزهایی است که می‌خواستن بمب اتم درست کنن یعنی جایی که اینا آب سنگین داشتن ها و همه اینها من گفتم اصلا ایران نیازی به این نداشت که نیروگاه هسته‌ای داشته باشه حتی همون چیز بوشهر هم در دوران شاه اشتباه بزرگ بود ما نیازی به این چیز نداشتیم اگر قرار باشه که جنگی در بگیره و ما مورد حمله ای قرار بگیریم اگر یه بمب اتمی زده بشه همونطوری که ژاک شیراک گفت گفت اگر ایرانی ها یه بمب ندان دو ساعت نمیکشه که روی تهران 20 بمب اتمی ریخته میشه. در نتیجه اصلا رفتن پایه همچین چیزی در دادن سرمایه ملت بود که دادند، و به این روز انداختن الان آخرین مقالاتی که در زمین های اقتصادی آمده همه دوستان این رو میدونن و خوندن این بر. که ایران 6 درصد رشد منفی اقتصادی داره و پیش بینیشون این هست در سال آینده منهای 15 درصد بشه دوستان اون بلایی که سر ملت آمده و سر اقتصاد ایران آمده تحریم ها فقط بهش سرعت داد اون چیزی که اقتصاد ما رو به این روز و جامعه ما رو به این فقر و فلاکت کشوند مدیریت کلانی بود به نام جمهوری اسلامی که بر این جامعه اعمال شد معلومه از هر گامی که برای باز شدن جامعه باشه باید استفاده کرد و باید به طرفش رفت ولی این خیال و این تصور که این نظام یک روزی با این شکل و ترکیب بخواد تن به اون دموکراسی که در ذهن ما هست بده این خواب است متاسفانه یعنی نظر من اینه خب خیلی این دید رو و این نظر رو دارن که این رژیم میتونه به ارحال یه روزی تحول پیدا کنه بعد هم مثال به ارحال اروپای شرقی رو میارن البته در اونجا مسئله خیلی تفاوت داشت لاقل نیروهایی که در اروپای شرقی بودن افرادی بودند که مال قرن بیستون بودند، یعنی تفکر درست کمونیست بود ولی یه چیزی بود مربوط به قرن 20 و یا قرن نوزده حالا استبداد و دکتاتوری هم قاتیش کردن اینا بینش چارده قرن پیش رو میخوام به خورد ما بدن خب این معلوم هست که لاقل با اون میشد امیدوار بود که اصلاح بشه که شد ولی به اینها ممکنه واقعا با بعد از سی و سال هنوز صحبت هایی که اینها می کنند و اعمالی که انجام میدن این بوی اصلاحات داره از توش میاد و تمام دورانشون اینطوری بوده. اون مربوط به بعد از جنگ بود، شما به من یک نفر بیاد بگه که جمهوری اسلامی از روزی که آمد و یا مثلا وقتی جنگ تموم شد، که فکر می کردند حالا میلیارد ها دلار دیگه صرف هزینه های جنگی نمیشه و میاد وارد اقتصاد ایران میشه و اقتصاد ایران راه میندازه شما نگاه کنید هم نرخ تورم بالاتر رفته هم وضعیت مردم بدتر شده و هم این که ارزش پول ملی ما مرتب پایین آمده چرا؟ علتش معلومه برای اینکه اینها تنها چیزی رو که فکر می ملت چون اصلا به ملت اعتقادی ندارن و منافع ملی و در واقع چپاول شد مملکت ایران شما در هیچ دوره از تاریخ ایران نمی بینید که این همه سرمایه از کشور خارج شده باشه این ارقام ملیاردی رو که ما میشنویم این در واقع میشه گفت است در برابر یک هندوانه که ما داریم میشنویم ولی اه وقتی که اون اسناد واقعی روبشه بعد از رفتن اینها اون وقت میفهمیم که چه فاجعه در واقعه به سر این ملت و مملکت آمده اما در هر صورت معلومه در تحت هر شرایطی اینها حاضر شدن که قنیسازی رو به 3.5 درصد یا 5 درصد برسونن این چیزی هست که ما از سال 1959 داریم یعنی اگر شما اون نیروگایی که اون زمان در امیر بود و با واسطه به دانشگاه تهران بود و بعد در کرج در سال 1964 یا 65 اگر اشتباه نکنم تا اون موقع اجازه داشت ایران 5 درصد غنیسازی بکنه این همیشه بوده یعنی این چیزی نیست که ده کسی ده به اصطلاح امروز اینا به دست آورده باشن و این بوده این چیزی که بوده اینو گذاشتن و حالا این همه سرمایه این همه بودجه، که شما به اعضای هر میلیارد دلار در بخش صنعت میتونستید چهل هزار شغل ایجاد کنید و در بخش کشاورزی به اعزای هر میلیارد دلار می توانستید۱۷ هزار شغل ایجاد کنید ببینید فقط همین 170 میلیارد دلار چقدر شغل در این مملکت ایجاد می کرد. که وزیر کارشون آقای نیا گفت ما الان پنج میلیون بیخاره داریم و در دو سال آینده پنج و نیم میلیون دیگه هم اضافه خواهد شد یعنی نزدیک به یازده میلیون و بعد گفت این سونامی بیخاری است که بر سر ایران فرود خواهد آمد این اون فاجعه بود که اینا برای ما ایجاد کردن و حالا تازه رسیدن به جایی که اصلا نمیباید چین کارهایی میشد یعنی ما ذوق نکنیم که یه همچین چیزی شده بلکه ببینیم واقعا چه بر سر ما آمد تا به اینجا رسید بر سر اون ملت واقعا چه شد یعنی این کارتونخواب ها و به قول وزیر بهداشتشون بیش از ده میلیون مقتاد در اون مملکت هست یعنی 50 میلیون ایرانی با مسئله اعتیاد درگیره نه اینکه که همشون معتادن ولی وقتی که یک نفر معتاده اگر زن و بچه داره و یا پدر و مادر داره حد اقل چار پنی نفر با اون یه نفر درگیر اون مسئله اونن این انرژی میبره در یک مملکت این انرژی که باید صرف ساختن اون جامعه بشه مقصر کیه تو اینجا مقصر تنها و تنها نظام جمهوری اسلامیه یعنی ما ببینیم اولاً چه چیزی به دست آمد و چیزی که لازم نبود شروع بشه و حالا که شروع شد این به دست آمد به ازاش چه چیزهای از دست رفت باید روی این مسائل هم واقعاً صحبت بشه خب من دیگه همینجا صحبتم رو تموم می کنم شهریار عزیز مثل این که دستشون بالا بود رفتم حالا یا نمی‌دونم هستن. خب دلی جان شما می‌خوای صحبت کنی به هر حال از دوستان من خواهش می‌کنم بیان دیدگاه‌ها و نظرات خودشون رو بگن از برخورد دیدگاه‌ها و نظرات و اندیشه ها هست که به هر حال یک چیز درستری بیرون خواهد آمد و دلی جان شما می‌خوستی صحبت بکنی یا اینکه نه خب دلیل عزیز پس من میکروفون رو برای شما رهاب میکنم بعدم خودتون بدید به خانم مروه دوستان سلام ارزی کنم والا خوب باشید ج... کیانوش عزیز جانگیر عزیز دوستان نوبت بگیرید صحبت کنید من نوبت میگیرم چون کسی در نوبت نبود یک دوست دیگری در نوبت بود می‌کسی که می‌خواد چی شد بهش کیو در نوبت بود ادمینای عزیز نمیدم نوشتن یا نه ادمینای عزیز که این یکی دو ساعت هستن خواهیش هستم که همکاری کنن اولا در مورد تکسا بانس کنن اگر کسی بیراد گفت در تکسا و... از خدمت شما که در کنترول کنترل اتاق هدایت کنن تا ببینیم چه میشه تشکر میکنم از مصطفی شکری عزیز که برنامه رو زبد میکنن نمیدونم برنامه زبد میشه مصطفی عزیز برنامه زبد میشه اسمش چی بود؟ مروح جان این که آه برنامه داره زبد و نمیدونم چی بود اسمش این که شریار و شریار خیلی خوب شریار نیست شهری رو برمیگرد و بعدن صحبت میکنه معمولا اتاق ما 6-7 ساعت باز دوستان و بیشتر مواقع بالای صد نفر میشیم و خوشحال هستم که اتاق فرنگ گفته بود بعد از این سالیان سال هنوز محبوب هست بین دوستان عزیز و هستم که کوالتی و کیفیت اتاقای پلتاک روی هم رفته خوب بشه چون الان بیشتر تسخیر شده پلتاک به وسیله یه دی که شاه پرستند و ی و این به حساب توازن رو به هم میزنه و ایران رو عقب نگه می‌داره دوستان عزیزی که به حساب مطالبی دارن با همتناشون میخوان صحبت کنن. بهتر از اگر دو سه سال وقت پیدا کردن واقعا اتاقای جالب و آموزنده باز کنن در پلتاک. این روز اتاق بودم حالا بعداً تعریف میکنم براتون. دوستان راجع به این موضوع توافق نامه یا تسلیم نامه. یا قرار داده تو چای دوم یا به حساب همون جام زهر دوم که خمینی بارها و بارها من اینجا اشاره کردم به خساراتی که خمینی به کشور زد ولی تا زمانی که به حساب هزاران نفر صدها هزار نفر میلیون ها نفر در ایران فریفته ای این خرافات و افکار قرون و است که فسیل شده است ما طرق کاری که میتونیم این بکنیم از اون بخصوص در, در خارج از کشور این است که از روشنگری به قول آقای مسعود نقرهکار به حساب خودداری نکنیم ما با اون حقایق رو و حقیقت مطلب رو به مردم بگیم اگر کسی جیره‌خوار رژیم هست خب اون مشخص است و حرفایی که میزند روشن می‌کنه هویتش رو ولی اون اشخاصی که خودشون رو آپوزیشن واقعی می‌دونن بایستی بدونن که تا زمانی که این رژیم هست مردم ایران برده و بنده میمونن. حالا ممکن است شما بگید که مثلا خب سرمایه‌داری این جور و مثلا مردم در کشورهای سرمایه‌داری برده. نه ولی خب ما داریم میبینیم که کشورهای سرمایه‌داری هم با هم یه فرق داره بردگی و بندگی مردم و طرف ساعتی 25 دلار میگیره یک کارگر ساده مثلا توی لاین تولید مثلا خودرو هست. حالا می تولید خودرو و برنج در ایران دو برابر شده است یکی از مسائلی که این آقای روحانی رو رئیس جمهور کرد و یکی دیگه از مسائلی که اینها رو وادار کرد بنشینن و با این آقای ظریف خائن که با مطبوعات اروپایی مصاحبه میکنه و ادعا میکنه در ایران زندانی سیاسی هرگز وجود نداشته ببینید یه کسی چقدر بایستی واقعاً به قول مسئول نقلکار بیشرب باشه که یک همچی حرفی بزنیم این از که از حسن دایی بگیرید تا آقای بهرام مشیری بگیرید تا آقای نقلکار بگیرید تا عزیزان دیگری که در طیف اپوزیشن واقعی کشور ایران دارن فعالیت میکنن در خارج و میدونن که نکنی یه سری هستن که خب انبال خامنهی زیاد شده دیگه درسته؟ در هرچی مردم ضعیفتر و بدبختتر شدن خامنه و همدستاش دستاش و قوی تر شدن در این ۳ و پنج سال و این هم از هوش و کاوت و علم و ادب و شعر و موسیقی و ادبیاتشون میست دوستان این از این است که از همه بیشتر مسلسل رو دستشون نگه داشتند و از همه بیشتر ساتور بلدن بکشند و به قول شاملو چه میگه به اندیشیدن خطر نکن یعنی کشور رو به جایی رسوندن که باید بگی به با اندیشیدن خطر نکن روزگار غریبی است نازنین از نداری این اوضاع تغییر نمیکنه مگر این که این رژیم دفع بشه این میکروب و این بلا و این مصیبت عظیمی رو که که شما ببینید مثلا داریوش چی گفته این دلیل نمیشه که شما برید ببینید قبل از اینکه قطع قطعه کنن قبل از اینکه 14 ضربه به پیکره داروش فروهر وارد کنه 28 ضرب چاقوب به پیکر پروانه فروهر وارد کنه برید ببینید فروهر یا پروانه اسکندری چه گفته راجع به این کشور ایران اینا یک عده ناسیونالیست بودن تازه تازه اینا عدالت خواه نبودن اینا اشتراکی نبودن اینا خب به خودشون نمیگفتن کومونیست مثل بعضی ها از رفقهای ما اینا یک عده تازه ناسیونالیست بودن برید ببینید میگن چه به چه روزی انداخته و این کشور رو. همزمان که مردم رو اینجور ضعیف و لاابالی و بدبخت و کرم فیرزا جزمن توی اتاق میگم مردم کرم از تنشون در میاد اگر شما در نروژ نشستید اگر شما در کانادا نشستید اگر من در آمریکا نشستم و برام فرقی نمیکنه که شپش توی ریش اخوند باشه و کرم توی بدن هموطنان باشه اون یه بحث دیگریست باید بیان بگم اینکه در کشور من داره باران اسیدی میباره و هوای هیچ شهری قابل تنفس نیست یا من عاشق نوربش شدم تمام شده رتبه پیکارش یا اگر هنوز ذره ای عشق ایران در من هست باید اعتراض کنم باید حقیقت رو بگم به قول مسعود نقرهکار بایستی روشنگری کنم راجع به این موضوع اگر نمیخواید روشنگری کنید خب استعفا بدید برید حتی میتونید اون 4 پنج ساعتی را که میذارید برای ایران برید پول درارید به قول غلام حسین میگه اپوزیشن پناهنده سیاسی به هر کاری تند با دستش با دست علیلش به هر کار یدی پرداخت با پای ضربت خوردهش زخمیش دوید و با چشم کمسویش همه جا را دید خب ناراحت نشید اگر اپوزیشن واقعی ایران همه جا رو می‌بینه دوستان راجع به این موضوع صحبتهای زیادی شد ما اتاق فرهنگفتگو رو نمیدم دوستان میدونن یا نه و غلاده یک شنبه باز کردیم و در اون اتاق تمام سرخطه این که این توافق نامه یا تسلیم نامه چه کرده و کجوری اینها تسلیم قدرت های خارجی شدند و بعد از اینم بیشتر میشن مسابق آقای جانکری رو در همون روز یه شنبه کرده بود و ترجمه کرده بودم و آمد در اتاق مطرح کردم و مطالبی رو که دوستان در آورده بودن و سرخت های این توافق نامه بود همه رو به استهزار دوستان رسوندن و اتاق خوبی بود این غنی سازی 20 درصدی باید به 5 درصد تقلیل پیدا کنه توقف پیشرفت و توانایی باید انجام بشه یک دوم های نتنز و سه چهارم های خوردو باید تعطیل بشه شش ماه وقت آزمایشی دارن و اورانیوم تازه غنی شده باید اکسید بشه مثل خود آخون باید فوسیل بشه راکتور آراک دیگه باید راه اندازی نشه بعد از این همه که جهانگیر عزیز اشاره کرد که این عراق بسیار بسیار روشنفکر شده جانگیر عزیز یه رقمی گفت 160 میلیارد دلار بیشتر از پولایی که خود خامنه ای دزیده گذاشته به حسابش خرج عراق شده خب و این سوخت الان دستشون بود شد آقای حسن داری مصاحبه جالبی کرده بعداً پخشش می‌کنیم در اتاق میگه که دیگه مثل کسی که فوت کرده باشه دستش رو شد معلوم شده این حساب خالی هایی که میکرده تا چی داشته چی نداره؟ و معلوم شده که هیچی نداره و این فقط برای مصارف نظامی بوده این کارش. و این برای اینکه سوخت شده راکتور تهران هیچ سوختی لازم نداره راکتور راور بایستی سوختش از روسیه خریداری بشه تعقل داده شده در قرار داد و بازرسان بایستی دسترسی روزانه و مستمر و دائمی به نتز و فردو داشته باشند و آقای جانکری این موضوع رو خ... سریعا گفته که قنیسازی اونها برگشتن بر مبنای یه چیز دیگه این روحانی خائن به خامنه ای دوست گزارش کرده که دوستان وقتی میگید روحانی باید بگید چه کار است وقتی میگید خامنه ای باید بگید چه کار است اگر نیکرسید استفاق بدید برید برای که جهان که که با جانش نهیم بده باشه این وسط به قول قراموسی سعادی اپوزیشن نیست داره خود چه گول میزنه بقیه را میخوا گول بزنه اگه مزدوری اونم بیاید بگید مرسی مرسی آقای دلیر من با اجازه شما با دو نکته رو در واقع توضیح بدم چی میگن دست خانم مروع افتاد پایین که طبیعتا نوبتش هفت میشه ببینید سه تا نکته رو من باید تو رابطه با هم بگم یک این که این توافق انجام شده باید به این پرسش پاسخ داد آیا با این باید مخالفت کرد؟ بگیم یک توافق تاریخی بوده مثبت بوده یا یک اشتباه تاریخی بوده ببینید تو عرصه جهانی اسرائیل و کانادا اومدن بیانیه دادن و مشخصا گفتن آقا این یک اشتباه تاریخیه و کانادا کرد ما به هیچ وجه تحریم ها رو لغو نمیکنیم و ادامه میدیم این در عرصه خارجی در عرصه داخلی هم کیهان شریعت مداری و یه سری از این سوپر ارتجایی‌ها علی رغم اینکه رهبرشون خامنه‌ای در واقع موافقت کرد و تبریک گفت و موفقت آمیز نامیده مخالفت میکنن دوست داری که در اپوزیسیون هستن باید سریع بگن آقا این چارچوب یعنی چیزی که دو طرف کوتاه آمدن یه توافق به نام آیا با این رو مثبت میدونن یا نه یک دو این کاملا صحیح هست که جمهوری اسلامی حد اقل ده سال پیش میتونسته این به اینجا برسه ده سال پیش میتونسته بگه آقا بیاین تمام تاسیسات اتمی برای ناظران بینمالی بازه و ما نمی خواهیم هیچ پنهانکاری انجام بدیم 19 سال پنهانکاری انجام دادن همونطوری که جهانگیر گفت و دلیل عزیز گفت ها دلار هزینه شد برای اینکه سوخت دو هفته تأمین بشه حالا مجبور شدن که اینو در واقع 20% درصدی رو تعلیق کنند و لب لب بنابر این این انتقاد هست به لحاظ تاریخی که به مسئول مستقیمشم آقای علی خامنه‌ای است که در واقع مسائل هسته‌ای رو ایشون تا به حالا دنبال کردن مسئله سوم این هست که از دوستان مطرم میکنن که آقا این تهافق حالا خوب هست ولی این باعث شد که عمر رژیم اضافه بشه دوستان به نظر من این تهافق یعنی مرگ جمهوری اسلامی آغاز شده چرا برای این که سی و سال این رژیم رهبرانشون همین تا دو روز پیش میگم مرگ بر این مرگ بر اون مرگ بر آن خب حالا مجبور شدن با همون شیطان بزرگ که میگفت هیچ غلطی نمیتونه بکنه نماینده خامنه ای یعنی آقای ظریف کسی نیست که بدون اجازه خامنه ای اینا نمیتونن دست بدن به امریکا بیاد بیاریم همین آقای خاتمی رو که رفته بود توی سازمان ملل رئیس جمهور آقای آه، کارتر آه، چندین بار برنامریزی که با یه دست بده رفته و تو تووالت خودشو قایم کرده بود از ترس کی از ترس آقای خامنه‌ای بنابر این این یعنی مرگ جمهوری اسلامی مرگ جمهوری اسلامی اینجوری نیست که بریزن تو خیابون بکشن و اعدام بکنن نه مرگ اون ارزش ها و میارهایی که جمهوری اسلامی رو می ساخت شما مطمئن باشید این سوال همین حرفی که آقای جهانگیر زد که با آمار و ارقام نشون داد چقدر به صلا این کشور به خاطر بیخردی و جاه تلبی آقای خامنه ای زرهر این سال برای همه هست حالا این توافقی که شده 6 ماه دیگه اگر نقص نکنه ایران ادامه پیدا خواهد کرد بعد از دو سال تمام تحریم ها خواهد شد به کجا میرسن؟ به پونزه سال پیش میرسن این تحریما 15 پونزه سال پیش شروع شد یعنی اگر همه کار به این این دیگه یک بچه دبستانی هم در ایران میدونه که تمام بدبختی های این زیر سر ولی فقی آقای علی خامنه‌ای است. حتی امروز آقای حسن روانی اومد صحبت کرد تمام کاسکوس ها رو انداخت که به گردن آقای احمدی نجاد درست احمدی نجاد کارایی چیز کرد ولی چه کسی احمدی نجاد رو آبورد تقلب انتخاباتی کرد و اومد توی نماز جمعه مطرح کرد که آقا من هم خط احمدی نجادم همین آقای علی خامنه‌ای بنابراین این سه تا موضوع رو ما نباید بکنیم یک این توافق توافق درستیه جلوی زرر از هر کجا گرفته بشه منفعته برای مردم ایران منفعته برای حکومت هم هست ولی واقعیت اینه که این منفعت خودش مرگ جمهوری اسلامیه جمهوری اسلامیه از روز اول تحسیز خودش با مرگ بر آمریکا شروع کرد رفت سفارت گرفت سفارت آمریکا گرفت انگلیس کرد حالا دوباره رفته در واقع دست دوستی با همین آنها رو درست من متشکرم جانگیر عزیز نمیدونم مایک بدم به مروه چون دست مروه افتاد و یا اینکه خودت میخوایی بگیری اگر اوکی هست بدین که آره. خیلی خوب صدایی از جانگیر نیومد برصورت عدمینی اتاق رو جانگی و دلیل کردستانی به وظیده دارن مروای عزیز شما بیاین فکرم نوبت شماست و بعد هم جهانگیر ادمینی اتاق رو دنبال میکنه. نفس کنیم از صحبت های دوستان قبلی و دلیر یک بخش از صحبت های دلیر من نمیدونم دونم مخاطبش کیه که دیگران رو تشویق به ماندن یا استفاده دادن میکنه و ما خیلی بده که خودمون رو در مقام جاد بذاریم و دیگران رو محاکمه بکنیم که دیگران میتونن اپوزیسیون واقعی باشن را غیر واقعی صرفا به دلیل اختلاف نظر همون کاری که جمهوری اسلامی میخواد بکنه ما به نوعی دیگه داریم بیانش میکنیم ببینید دوستان مسئله اینه که این که جمهوری اسلامی این همه هزینه کرد 20% غنیسازی کرد الان باید از مین ببره این که توی این 10 سال گذشته به خصوص مملکت از لازه اقتصادی ویران شد این ها چیزهایی که گذشته و همه ما میدونیم موضوع الان اشکال ما اینه که نگاهمون به گذشته است. ببینید من فکر کنم که ما باید الان حال این زمانی که درش هستیم با این وضعیت به آینده رو ببینیم این که چشمنداز ما چه خواهد شد این که حالا این قراردادی که امضا شد واقعا چقدر تأثیر گذاره و اصلا قرارداد دوان پیدا خواهد کرد واقعا یعنی حتی این احتمال است که قبل از شش ماه قرارداد هم منتفی بشه اصلا ببین این قرارداد خیلی زیرو بم داره باهابا این صباعتی که دوستان میکنن و همهش میگن که جمهوری اسلامی خرج کرد خب الان جلوی خرج کردن رو گرفته الان اینجا رسیده که اشتباه کرده بله من هم معتقدم که جمهوری اسلامی بعد ده سال قبل این کار رو میکرد و اجازه میدادین بازرسای آژانس بیان بعد دیگه موضوع اینجا نمیکشید خب این مشخص یک چیز انتقادی که واقعا وارد واقعا از لحاظ اقتصادی مملکت رو تو کرد هیچ چیزی شک و تردیدی در این نیست. ولی اینکه توافق ببینید دوستان الان یک توافق شده. یک توافق شده. و ما فکر میکنم که باید این انداز رو ببینید. ببینید وقتی من صحبت از منافع ملی کردم، دوستان منافع ملی ما با منافع ملی خامنه‌ای یکی نیست. خامنه‌ای خودش رو در این زنجیره می‌بینه به خاطر حفظ خودش. وقتی من شخص من نوعی صحبت از منافع ملی کنم، صحبت از اون حق و حقوقی رو که ما به عنوان یک مملکت برای استفاده از تکنولوژی جدید باید داشته باشیم. مسئله انرژی هسته ای مسئله بسیار مهمه. مگر ما چند نسل میتونیم نفت داشته باشیم یا نفت بفروشیم یا اینکه از این طریق استفاده بکنیم؟ انرژی هسته ای چیزی که همه دنیا دارن استفاده میکنن یک دانش یک علم یک تکنولوژیه که من فکر نکنم هیچ ایرانی آقلی این رو نفش میکنه به عنوان یک تکنولوژی مثل اینکه که ما بگیم که خب ما اینترنت نمیخواییم جمهوری اسلامی که سانسور میکنه و جمهوری اسلامی که فلیتر میکنه پس ما اینترنت رو لازم نداریم نه ببینید این میشه عین همون ما باید از تمام تکنولوژی که در سطح دنیا وجود داره برمن باشیم و استفاده بکنیم. و این حق ماست این یعنی است... این یعنی که تو شما از حقوقی که داری چیزی که منافع ملی تو حفظ میکنه تو میتونی ازش استفاده بکنی توی مسائل پزشکی توی علوم فضایی اینها اینها چیزهای مهمی که من فکر می‌کنم ما باید اینها رو مد نظر داشته باشیم. لوگو پنج, پنج من حرف جمهوری اسلامی رو نمیزنم. من واقعیت موجودی رو که در این دنیا وجود داره رو دارم فقط توضیحش میدم که ما کجا هستیم دانش علم تکنولوژی کجاست آیا ما بانوان یک مملکت میتونیم این رو داشته باشیم شما این رو میدونید اگر در خرادات های بین این امزا بشه که ایران حق استفاده از انرژی هسته رو نداره این حق همیشه گرفته میشه از کشور ایران ببینید دوستان آخوندها فرق میکنن آقای خ اینجاست که منافع ملی من و منافع ملی خامنه‌ای با همدیگه گره نیم خوره اصلا منافع ملی ملت ایران در منافع ملی اونها نیست. خب ما برای ها نمی‌گیم خدا ما این دانش رو برای ایرانی‌ها میگیم ما که نگفتیم که مسلمان ها یا خوندا بیان از دانش استفاده بکنن، ولی اگر یک قراردادی امضا بشه که ما از این حق محروم بشیم، برای همیشه محروم و ما نباید زیر یک همچین قراردادی رو امضا بکنیم به نظر من جمهوری اسلامی با تمام خطاهایی که کرده با تمام اون که واقعا این ده ساله و در مجموعی 34 سال جنایاتی که کرده ولی من روی سیاست خارجی دارم صحبت میکنم و سآلهای کیانوش هم صرفا در این مورد بود من صرفا اون سآلها پاسخ میدم و چیز غیر از این نیست اوراشو پر روح خب شما آیدیتون که دیگه معلومه من دیگه والا چی بگم فیلم بازی کردن نیست من واقعیت رو میگم ببینه دوستان مسئله این که این قرارداد امضا شد به نوعی شبح جنگ رو از بالای سر مملکت برداشت ممکن بود هیچ درصدی وجود نداشته باشه برای اینکه واقعا امریکا حمله بکنه با امریکا هم در موضعی نیست که بتونه همزمان توی 50 تا کشور دنیا نیروی نظامیشو تقسیم بکنه اونا با یک کشور 70 میلیونی بخواد وارد یک جنگ بشه اونم جنگ مثلا چه می‌دونم از طریق زمینی ناگهان بخواد از افغانستان یا از عراق وارد مملکت بشه در نتیجه اینا مسائل مهمیه حالا این فقط در یک شبه و تبلیغات بوده تبلیغات رو که خطر تکرارش می‌کنن در جوامع تا طریق این مدیا و ها که به واقعیت میپیونده می برای مردم و مردم با رو و بشد در اون به سر میبرن الان این شبه جنگ از بالای سر کشور ما برداشت شده این مهم مردم دیگه تقدقه این رو ندارن که فردا جنگی خواهد شد من فکر می کنم تمام اینا نکات مثبت این قدنامه است تمام اینها رو ما باید بشمریم که این قدنامه این تئوراقو نومیک امضا شده چقدر میتونه مثبت باشه در هر شکلی که شما در نظر بگیرید دوستان این مثبته من فکر میکنم تمام کسانیم هم که مخالف سرسخت جمهوری اسلامی هستن من که خودم مخالف جمهوری اسلامی هستم ولی من معتقدم این سیاست سیاست درستی بود حالا به قول رفیق مونتیانوش شاید اگه ده سال پیش امضا میکرد خیلی خیلی بهتر بود مثل مسئله جنگ اگر جنگ رو به جای سال 68، سال 62، سه همون کردن خب وضعیت مملکت بسیار متفاوت بود. زیر ساختهای تمام اون شهرهای مناطق مرزی از بین نمی رفت کلی امسان کشته نمی شد اینا مهمه ولی جلوی زرر رو به نظرم هر موقع بگیریم به نظر من این منفعته ببینید احتمال این می که قراردادم امضا نشه آیا اگر قرارداد امضا نمی شد شما فکر میکنیم وضعیتی بهتر از الان ما داشتیم؟ موضوع 7 میلیارد دلار نیست. دوست عزیز شما که میگین که 7 میلیارد دلار، من هم میدونم که در محاسبات 7 میلیارد که سهله. حتی 100 میلیاردم تو این درآمدای گفت عدد و رقم محسوب نمیشه. ولی موضوع اون نیست. موضوع اینه که یک قراردادی داره بسته میشه. یک رابطه‌ای باز میشه. راه رابطه ارتباط با کشورهای دیگه ارتباط با قرب همون چیزی که خیلی ها شیفتشن ولی الان به صرف اینکه مخالف جمهوری اسلامی میخوان پنهانش بکنن این مهمه که الان ما این بیس یک رابطه است اساس یک رابطه است این اگر ادامه پیدا بکنه به نفع ماست به نفع ماست از همون بابتی که شما میگین که جمهوری اسلامی حقوق بشر رو رایت نمی‌کنه. کنه جمهوری اسلامی آدم کشه جنایتکار اینا هم است همین بیروز یا امروز من دیدم یک دونه اعلامی بیرون اومده در ایران که خانم سیمین باهانی خانم پروین پاملی شاد نیست مادر سهراب و چند تا از نویسندگان و وکلا این اعلامیه رو بیرون دادن در اینکه اعدام رو حتی اسمش رو گذاشتنه که نفر گام به گام اعدام یعنی حتی برای اینکه اعدام رو در جمهوری اسلامی از بین ببرن این رو میخوان گام به گام پیش ببرن اون سیاستی رو که الان داره توی جامعه ایران پیش میره این روندیه که داره کار میده در جامعه ایران ببینید دوستان تنها تنها راهی که الان هست راه مبارزه مدنیه شما حتما دو علامیه رو بخونید ببینید که وقتی در اون صحبت میکنه از پیش مبارزه گام به گام در جامعه ایران و مبارزه مدنی چقدر میتونه تاثیر گذار باشه این ها نکاتی که باید ما فکر کنم باید بهش خیلی خیلی توجه بکنیم ببینید اسرائیل، احمدی نجاد، مسبا، شریعت مداری دقیقا آدمایی هستن که همگام و همسو به اضافه کنگرسمان های آمریکایی امریکایی هستن که از این قرار دار نرازی هن واقعا نرازی هن. این نشون میده که ما در کجا قرار داریم. این خیلی مهمه. شدن با نتانیاهو، شدن با شریعت مداری به نظر من فکر میکنم ما باید یک مقدار دقیق تر مسائل رو بررسی بکنیم. یک مقدار دقیق تر نگاه بکنیم. این قرار داد. اینقدر های اهمیته که همسایه های ایران هم این توافق رو قبول دارن. اعلام این رضایت کردن از این. حتی عربستان سعودی با اون همه سنگندازیش با اونم اینکه خود شما سر سخت اسرائیل میدونست س می, می گفتفت که استرالی ها از ایرانیا به ما نزدیک حتی اون هم این توافق نامه رو در نهایت مجبور شد همون آهسته آست این رو تاییدش بکنه من فکر می که به جلو نگاه کنیم که این قرارداد چه دستاوردی آوردی داشته باشه؟ اینکه 20 درصد متوقف شد اینکه، چه شد و چه شد و توی این چند ساله ما چقدر ذعر کردیم اینا همه درست ولی من فکر می ما باید نگاهمون به جلو باشه. ما با مرتب عقب برگشتن امکان نداره بتونیم یک تحلیل واقعی از شرایط بدیم. همه خوشحالی مردم ایران رو از ورود ظریف جامعه ایران نگاه کنید دوستان اینا به نظر ما مهم نمی فکر میکنیم که چهار تا آدم رفتن تو خیابون و خوشامد گفتن ولی این شادی که، در جامعه ایران برگشت این خودش یک امیده برای این نسل جوانی که تو جامعه ایران دارن مبارزه میکنن نه برای ما که در پالتاک هستیم وقت میخواد مردم رو جاج میکنیم یک کد رو وادار به استفهام میکنیم یک کد رو براشون دست میزنیم شما ببین جامعه ایران چقدر تغییر پیدا کرده اینها همه مهم و تاثیرگذاره شادی ملت ایران رو ما نباید نو میدانه تصورش بکنیم به نظر من این یک جوری تزاده با اون چیزی که ما میگیم اپوزیسیون هستیم با اون چیزی که ما میگیم ما خانه رفاه مردم هستیم معاشات مردم هستیم آسایش مردم هستیم و اینکه مردم در یک جامعه باز و آزاد زندگی بکنن این در تناقض با اصل صحبت هایی که ما میکنیم این مخالفت ما به نظر من مرسی از شما ممنون میکروفون خدمت شما خب خیلی ممنون از شما البته شما گفتید شادی ملت ایران اون چیزی که تو تلویزیون ها از جمله تلویزیون جمهوری اسلامی نشون میداد بیش از سه چار پنج هزار نفر حد اکثر من ندیدم لاغت و اما اینی که بنده امیدوارم که این 3.5 درصد رو برای همیشه بتونن اینا نگه دارن یعنی من 100 درصد با این داستان موافق هستم که نمی بایست بیش از 5 درصد حتی اگر این رژیم هم برود به یک رژیم دموکرات و قابل اعتماد برای تمام جهان قرب و مهمتر از هر چیز قابل اعتماد برای مردم ایران این مهمترین چیزه که وقتی ملتی به دولتش اعتماد داشته باشه اون مملکت پیشرفت خواهد داشت خواهد کرد و اگر ملتی به دولتش اعتماد نداشته باشه شما در هیچ کجای دنیا نمیتونید یک نمونه بیارید که بگید این ملت به دولتش اعتماد نداشت ولی الان نگاه کنید مثلا صنعتی شده حتی یعنی در این اصلا شکی نیست ولی در همون موقع هم من با بیش از 5% موافق نیستم برای اینکه مشکل زباله های اتمی و هزاران دهها چیز دیگری که به دنبال خواهد داشت اما شما یک چیزی رو میگید میگید ما به گذشته کاری نداشته باشیم آینده رو ببینیم آخه مشکل اینجا هست که اون کسانی که این گذشته رو بر ما تحمیل کردن و به ما ده ده ده ده هر چیزی که تونستن آوردن همونها دارند آیندر رو برای ما رقم میزنن باید این رو دید اگر این گذشتگان عوض شده بودن و رفته بودند و عده دیگری با فکر دیگری با بینش و اندیشه دیگری آمده بودند. او وقت آدم میگفت مردم شما گذشته رو فعلا فراموش کنید مثل نازیس که در آلمان رفت گفتن ما فعلا به فکر آینده باشیم ولی این نبود هنوز هم فاشیستا رو در سن 93 سالگی بعد از 68 سال در آلمان میگیرن و روی صندلی چ... چرخدار میارن و در دادگاه محاکمه میکنن یعنی این به این نیست که کسی دست به جنایتی زد شامل مرور زمان میشه یا این که حالا هرچ این حرف شما درسته به شرط اینکه اون کسانی که این گذشته را رقم زدن برای ما اینا به گورستان تاریخ رفته بودن و کسان دیگری بودن و اون وقت آدم میگو امیدوار باشید ولی اینها همونها هستن چگونه میشه امیدوار بود؟ بر چه اساسی؟ کدوم میارها آخه؟ یعنی ولی این که به اینجا رسید حالا یا بازور بود یا خاست خودشون بود حالا اصلا روی این بحث نداریم. این بسیار عالی بود. و این که شبهه جنگ از سر و مملکت رفت، این هم چیز بسیار مثبتی بود. و من امیدوارم که 6 ماه دیگه این رژیم دوباره بازی در نیاره یعنی باز دو مرتبه این مسئله به یه نوعی به جاهای دیگه کشیده نشه. امیدوارم اینطوری بشه. خب، باریش عزیز و میکروفون در اختیار شماست سلام دوستان و عزیز صدای من در روم هست جانگی جان شما هم سرما خوردید رفع کسالت انشاءالله نینا جان سلام به دوست عزیزمونم سلام برسون اونجا در کنارته عرضم به خدمت توافق هسته‌ای و بررسی دیدگاه ها در اپوزیسیون هر دو مسئله رو باید شفاف بیان کرد یکی اینکه این توافق نیست توافق هایی سورت گرفته یه توافقی رو آمریکا نش کرده که بر اساس اون حتی حق غنی سازی رو با شفافیت کامل رد کرده یه تفا... توافقی رو ایران با شادمانی و با بوق و کرنا و پیروزی و اون تبریک ها داره اعلام میکنه که اون هم به نفع اه... همون بازی سناریوی برد برد نقشه راه آقای اه... روحانی. بود. کدوم توافق رو ما صحبتش رو می‌خوایم بکنیم؟ اون توافقی که شده واقعیت یا اون بوق که رژیم داره اعلام میکنه که پیروزی بزرگی بود بر جنای حاکم حالا بعد از این در هر کدوم از این چیزها یک باید بررسی کامل بشه حالا اپوزیسیون،, اپوزیسیون واقعی در کجاست مثلا خانم مروع بارها شده که این نقش اپوزیسیون رو یا خودش رو در داخل اپوزیسیون قرار میده و منافع مردم و پشت سر اونم قایمش چه اون زمان هایی که 500 سال 15 سال پیش که برنامه اصلی با هستی با این 150 میلیارد دلار بیشتر زمانی میخواست آغاز بشه گفتن که این حق رسمی مردم ایرانه حالا هی ما میگفتیم که آقا اگه شما اپوزیسیون هستیم مروع و امثال همفکرهای مروع تنها مروع رو نمیگم هم سکران در داخل اپوزیون رانده شدهی که خودشون رو اپوزیون معرفی می کنن. در این سر بزنگ ها شفافیت خودشون رو نشون میدن که تا چه حدی واقعا اپوزیون هستن تا چه حدی نیستن حتی اون 15 سال پیشی که 150 میلیارد دلار و حتی خیلی رقم ها خیلی بیشتر ازونه زیان هایی که توی این 8 سال و 10 سال گذشته وارد شده مبلغ رو بیشتر از این ها میبره بالا یعنی تا سقف 200 میلیارد دلار در این مساله هستی همون کشوری به نام ایران با اون حاکمیت اون رژیم ولایت فقیهیش باخت کرده و بعد از اون هزینه‌ها ها الان مجبور شده با عجز و ناتوانی دقیقا عجز و ناتوانی تسلیم اون توافقی شده که بعد اثر اون فشارهای تحریم مجبوره غیر از این چاره ای نداره دوستان غیر از این چاره ای نداشت و الا رو به ازمهلال میرفت. برانهای فضاینده داخلی، برانهای سیاسی، برانهای اقتصادی و اصلا سیستم اقتصادی فروپاشیده شده ی ایران چنین راهی رو برا، برای رژیم تحمیل کرد. این خود رژیمی که الان در بوگو و کرنا میدمه که پیروزی واقعیتش اینه که شکست عظیمی رو متوجه خودش کرده و اون رو پیروزی داره قلمداد میکنه من با جهانگیر و کیانوش دقیقا مافقم یشون میگن که سرنگونیم نه من میگم ازمهلال نقطه ازمهلال رژیم من به خاطر این شادمانم از این توافق که دقیقا تو این 33 سال گذشته با این همه مقامت رژیم در قبال فشارهای آمریکا با همه بدبستانهای 33 سال اخیر پنهانی با آمریکا برای کاستن فشارش با همین توافق با همین عجز و نتوانیش تسلیم و فشار ها شد و این آغازگر اون فروپاشی رژیم خواهد بود ازم رژیم خواهد بود من تشابه های تاریخی رو میخوام برای شما آغاز بکنم خود آمریکا از بد ورود به ایران حتی قبل از 28 مرداد تا آغاز اون رو من از هشت مرداد میخوام بررسی بکنم با فشارهایی که آمریکا برای ورود به گوزه بازاری به نام ایران شد اون حتی اکثر منافعی رو که بخشی از اون جناحای دوگانی دموکرات و جمهوری خواهد جناحای سرمایداری بخشی از اون رو کس کرد ولی اون رو قانه نمی کرد حتی در سال هزار چهلتو مجبورش کرد رژیم شاهنشاهی رو که به اون اصلاحات به،, به قول اون زمانی انقلاب شاه و مردم انقلاب سفید منجر شد حتی این منافع اون آمریکا رو برای نفوذ در بازار و در همون کسب منافع ایدالش هم در نظر نگرف آمریکا مجبور به کودتا شد در سال 48 با رهبری غرباگی یک کودتایی رو آمریکا رهبری کرد علیه شاه خب اگه این رژیم شاه محمد رضا شاه پهلوی آمریکایی بود چرا میبایس آمریکا توسط غرباگی کودتا انجام میداد در دو مرحله اینها نقاط پنهان تاریخیه آقای جهانگیر میگن که زبالدانی داره تاریخ نخیر تاریخ تاریخه، نقطه کور زیاد داره و نقطه ننگاور برای سردمداران تاریخ هم هست. اما هیچ جایی از تاریخ زباندانی نیست. میباید شکاف. من دقیقا این تشابه تاریخی امروز عجز نادوانی رژیم رو دقیقا سر تسلیم فرود میاره بر در قبال فشار آمریکا و خصوصا در قبال آمریکا نه غرب، به سال 51 تا 56 حواله میدم شما رو که تشابه این رو در آن زمان بجویی بعد از اون قودت های ناموفق رژیم شاه مجبور شد که با آمریکا باج بده و این به خوشنود عربابان غربی سایر اربابان غربی از جمله انگلیس و سایرینی که در منافع نفتی در حوضه های اقتصادی ایران در اون بازار سهم تظاهری داشتن و نمیخواسم با آمریکا در اون مورد معامله بکنن مجبور میشه رژیم شاه بدون رضایت اربابان خودش با آمریکا پاچ بده خریدهای کلان و همه اون نقضدان های آمریکایی در مورد حقوق بشر و همه اونها باعث شد که شاه هر نیشت در مقابل نیروی آمریکا نیروی سومی که میخواست اون قبضه بکنه اون بازار و اون چیزها رو اجتنا توانی نشون میداد و سپس در سال 56 با آغاز ازمهلال با توافق کل غرب و مخصوصا آمریکا و متحدین سایر متحدین ها مجبور شدند که اون قیام رو به نام مردم به به نام انقلاب به مردم بدن دقیقا اون گوادالوبون توافقی که برای تقسیم منافع هر یکی از اون شرکه های غربی شد برای دور زدن رژیم شاه توافق شد حتی هایزر و کل اون سفرها و اون ها رو من نمیخوام اینجا اون تاریخ رو رو ما بازگو کنم فقط نقطه تشابه این توافق هست ای رو با اون دوران اون فشار آمریکا رو شما به نظر بگیرید. غیر ممکنه که سایر اربابان رژیم در بخش در اون بخشی که انحصارا اون منافع اقتصادی ویژه ای رو دارن که چه در گذشته چه در سال 51 تا پنجه نخواستن و چه بعد از این نخواستن با امریکا تقسیم کنن و حتی با اون قراردات های پنهانی بده دبستان های رژیم با امریکا او اون فشارها کم شد الان دیگه فشار فضایندی امریکا با بر اساس این توافق عجزو ناتوانی و اون گیری رژیم جمهوری اسلامی مجبور رژیم جمهوری اسلامی به اون فشارها تن بده و این آغاز ازمهلال رژیم هست در قبال عربابان، سایر عربابانش در روسیه و انگلیس و ساگر اربابان نفتیش چه فرانسه و سایرین باشه این آغاز فروپاشی یک قدم در سر تسلیم قدم های دیگری رو دادن دیگری رو آغازگره این توافق هسته این پیروزی که آقایان رژیم و اپوزیسون نماهایی که خوشحالی میکنن از شابیه مردم از این توافق ها قبر ندارن واقعیتش اینه که این آغاز استارت ازمهلال رژیمیه که باید تن بده به سایر مسائل حتی در این شم... وقت 6 ای که گذاشته شده هیچ چیز به نفع حتی خود رژیم و اون آرزوهاش نیست اما تن داده به این باج ای. من به همین بسنده میخوام بکنم اما بیاین مثلا از یه زاویه دیگه اپوزیسیون رو تعریف بکنید اپوزیسیون وقتی خودش رو تعریف میکنه دشمنه دشمن وی دوست وی خواهد بود اما من دشمنی نمی بینم در مورد کشورها یا دولت مردانی مثل آمریکا یا دولتهایی مثل آمریکا و اسرائیل و غرب و اینها اینها بر اساس منافعشون حتی اون جنگ افروزی رو حتی در شوار هم شده برای کسب منافعشون انجام میدن اگر این دشمنی ها واقعی بود با رژیم جمهوری اسلامی که خودشون برپاش ساختن خودشون حتی با توافق بنهانش ادامه اون رو احتمال چیز کردند امتدادش دادن این دشمنی ها نیست بر اساس منافع ولی واقعیتش اینه که اپوزیون واقعی در سر بزنگها در چنین مواردی با شفافیت میاد بیرون خودش رو پشت سر اون منافع ملی قائم نمیکنه منافع ملی خانم مرزا، منافع ملی مردم ایران اگر هزار تومن باشه شما برای این بدبستان داروی و تحریم‌های تحریم های دلاری که فلان اینا هستین به نام مردم ایران منافع مردم ایران دهشایی چرا قانع می‌کنین مردم ایران رو به همون هزار تومنی که برداشته شدن رژیم لعل و نفرینی که حتی اقل توی 33 سال گذشته تمام این فلاکت ها، تمام این اعدام ها، شکنجه ها، آوارگی ها، اجتماعی و همه این ها وقتی این رژیم بره هزار تومن منافع مردم ایران هست با ده شاهی های شما برداشته شدن تحریم دارویی، قاند می کنید شما اپوزیسیون نیستید دقیقه شما اون اپوزیسیون دهشاهی هستی که به نام منافع مردم ایران خودتون رو ما و همون در قبال منافع دهشایی خودتون رو تعریف می کنید. امسال هم فکر هایی که در این بوهه بوه میخوان همون بازی بورد بورد، همون بازی رژیم رو که در این شکست و صفکن ش... خوردن جامزه اون رو میخواد با تبلیغات رسانه سیما جمهوری اسلامی به جهان و به خورده مردم بده که این بازی بورد, بورد، این پیروزی جمهوری اسلامی بود اینا میخوان این پیروزی رو از این طرف به خورد اپوزیسیون بدن و اپوزیسیون رو هاج و واج بنامد من دقیقا نقطه اوز میخوام پیروزی عزیز آرنید دلیل گرامی و فرید هم در نوبت بود اونهایی که در نوبت هستن چند جمله پا... پایان میدم که این شناختن واقعی و واقعی و حقیقی یک اصلی ترین مسئله است منافع اکثریت مردم ایرانی که یک زمانی بله این اکثریت بیشتر از 50 درصد به رژیم جمهوری اسلامی در سال 58 رأی داد مون یک سال و نیم بعد همون اکثریت 50 درصد به بالا که میگن نوت درصد بود حتی به جمهوری اسلامی به حزب جمهوری اسلامی در اون ریاست جمهوری بنیستد همون اکثریت رعی نداد از همون موقع به اینور هست که اکثریت رو اینها میخوان در کنار جمهوری اسلامی با آمارهای گلابی وزارت کشور و با انتصابات و همین نمایش های داخلی و خارجی میخواند مانبود بکنن این نمایش که اکثریت مردم ایران و منافع اونها در گروه ادامه ننجین حیات ننگین رجوم جمهوری اسلامی اینا کرخوندن اینها اپوزیشونی واقعی نیستن اینها نفوذی هستند در بخش اپوزیشنی که بارها در طی 33 سال سر بزنگ ها خودشون رو اوریان نشون با بختانه اپوزیشون و اکثرا اپوزیشون فریب خورده چون خود بازدهی خود جایگاه ویژه مستقلی نداره نه درک می‌کنم واقعیت های موجود رو نه اون بازی های پنهان دیپلماتیک یا سیاسی که رژیم سر به زنگ ها هر چهار سال یک بار آن رو به بازی گرفته. چش چشم دومینوت جمله آخر رو بگم اسرائیل، آمریکا همه، همه اونهایی که رو در روی رژیم در این توافق هستی توافق های هستی قرار گرفتن هیچ کدوم دشمنی با جمهوری اسلامی ندارن خود اسرائیل رو من میگم اونی که میگه که مصباح و جنتی و نتانیاهوی سر یک کاس هستن نخیر ادامه حیات رژیم صهیونیستی وابسته به حیات رژیم جمهوری اسلامیه نتانیاهو برای اعمال اون زور برای عدم توافقی که اون 20 سال به همت دشمنی جمهوری اسلامی خودش رو از اون پروژه صلح تونسته دور نگه داره به نیت اون سرمایه‌داران صهیونیست توی آمریکا و اونها مشروعیت خودشون رو از رژیم جمهوری اسلامی میگیرن بدون رژیم جمهوری اسلامی ها اصلا هیچ نیستن نخواهند بود پس خود رژیم جمهوری اسلامی در این نمایش دشمن تراشی دشمن سهیونیستی هم سگ هارو این همه بازی های نمایشی رو شما فرید نخورید اینا سرتهشون سر, تهشون سر تا یک کرباس این دشمنی ها هم بر اساس منافع مشترک چون توی یه سماریوی سیاسی فقط جهان فریب مردمی رو که ناآقاند یا آگاهی اندکی دارن میتونن بپریاً. واقعیتش اینه که رژیم جمهوری اسلامی 33 ساله در خدمت همون دشمن های فرضی از جمله سایل وسییونیسم بوده و هست. ممنون کیانوش، چهانگیر عزیز و همه در کاران دلیل گرامی من خیلی وقت بود نیومده بودم صحبت نکرده بودم از تایم ویژه که برای من تعلق گرفت متشکر و سپاسگزار. امیدوارم که سر دوستان رو درد نیاورده باشم بفهمید مرسی مرسی بارش عزیز خوب کردی که تشریف آوردی و خوب کردی که در بس شرکت کردی به دوستان عزیزی که تازه تشیه آنم به اتاق سلام عرضی کنم امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل جانگیر عزیز ما سرما نخورده باشید و اگر هم سرما خوردید لطفا در منزل بمونید و به دیگران ندید باکتریو این مدارس نمیدارم چرا درست نمی وقتی بچه سرما میکنه میاد توی پنجا تا همشاگردیش میشه. دوستان نگاه کنید بیشتر از اینکه که مردم این کشور ها احتیاج به این توافق نامه یا هرچی به نظر من و خیلی از اپوزیشن واقعی ایران تسلیم نامه یا قرارداد ترکمنچای به قول آقای بهران مشیری و دیگران به حساب تندر بده و بیشتر از اینکه که مردم خواهانین باشن این حکومت های هستن که محبوبیت و پشتیبانی مردمی خودش رو از دست دادن دوستان این حکومت‌ها ها دارن اعلام می‌کنن زیر 40% مردم مثلا یک تحلیل آقای بیروز فرانی کرده بود در راه چیز از همبستگی اونجا دوست ها میتونن برن گوش بدن میگه که همین آقای فرانس و اولان یا هرچی که از حزب سوسیالیس آبروی هرچی سوسیالیست دو دنیا برده و میگه که تابه هالی یک جا حتی دست راسیا اینقدر چیز نیست نبودن مورد تنفر مردم نه نفرت نفرت مردم فرانسه نبودن که این حکومت به اصطلاح سوسیالیستی است خب از اون طرف خامنهی که وضعش همه ما میدونیم هر انسان باشرفی که قلبش برای ایران میزنه و عشق مردم در قلبش از این با خامنهی ای مخالف هست همونجون که کیانوش اون شی عزیز گفت حق بچه مدرسه مدرسه البته کاش این بود که کیانوش میگه کاش <تصفيق> معلازی میدونست ولی بسیجی و ایدای که نقدی و اینجور جور اینا رو جعفری و اینا خل کردن تعدادشون کم هم نیست دوستان اینجوری دستی کم نگیرید اینا که به حساب میرن خودشون رو به کاپوت خامنه ای و سرش میزنن این از که آقای اوباما در همه کاره که ادعاکن موفقیت چشگری نشون نداده این مسئله بیمه درمانی رو که شروع کرد و با مخالفت دست روسیه به حساب به هر طریقی تکنیکالتی و فلان و اینا و از سنا و کنگره گذروند و به صورت قانون در آورد با موزلات عظیمی روبروست و ایشان بعضی گفته بود که آقای اوباما به مردم گفته بود که هیچ کس بیمهش از دست نمیده در صورتی که 5 درصد مردم بیمشون از دست داد و شما وقتی بیمه درمانی در, در دست میگی اینجا بیمارستانا با شوخی ندارن که یه لایه دلار صورت حساب و مردم عصبانی اند به خاطر این به این میس ها و این وعده ها وعده های خلافی که بهشون داده شده خب ایشون به هر طریقه بود میخواست یه چیزی نشون مردم آمریکا بده از اون طرفم خامنه‌ای که میدونید که دزدی هاش که صد میلیارد دلار دزدیه مردم گندش در اومده هزار صدها نفر از نوکران صواب خودش فرار کردن آمدن خارج دستش رو کردن و از کسانی که کلت می‌بستن و کانون هنرمگان تعطیل میکردن خانه سینما تعطیل می کردندن از این آ او باشی که با ای بودن و حال آمدن خارج که عمل رو می شناسیینشون و اینها این وزیر دارن که می این رو میخواستن این توف صورت بگیره آقای جانکری ولی سریح روز بعدش که البته درسکن مصاحی کرده بود که من مسابق رو بر اتاق فوق العاده این فرنگ گفته بود روزی یه شنبه تشکیل شد اونجا عین صاحبه آقای جان کری رو برای دوستان عرض کردم ما و وقت شد باز هم ار می کنم و این بیشتر مردمه hey, مردم مردم حزب توده ایران الان سالیان سال مردم مردم میکنه ولی چیزی که اصلا در ذهن چیز مردمه و از احسان تبری الان مقالاتی آمده بیرون احسان تبری دیگه ستاره عظیمشونه دیگه درسته احسانی آمده صریحا نامه نوشته که این حق شعوربیه که صاحب نفت شمال بشه بعد حالا رفتن زیر بار ملی مذهبی ها چیزایی که به خود میگن ملی مذهبی خلاص اینو بعدم وقتی میخوای حرف امروز رو بزنی میگن چرا حرف مثلا امروز میزنی حرف نمیاد 50 حرف میزنید میگه طرف میاد میگه آقا گوادالوپ مثلا Khomeini رو به ما تصریح کرد انقلاب ما دوز آقا ولش کن حرف 35 سال پیش در بی آقا اینی که الان کردی رئیس جمهور که تو میرخصی خودت تو بالا پایی میندازی تو که رفتیم تبعیه این کشورا شدی متمدن آوهای تمیز داری نفس نمیکشی در ایران حتی هوا جویی که مردم میتونن نفس بکشن توی شهر ایران آب دریاچه ها خشکیده نمیدونم همه چی مسموم کسافت تمام کشور برداشته گذاری حتی روی چاهای نفت نشده تمام پولا رو گذاشتن روی الافی که بهزا براشون هیچ هازلی نداشته حالا میگی تو که اپوزیشن به خودت میگی اعتراضم نکن حرف امروز رو بزن حرف امروز ایناست که این آقای روحانی که الان براش می‌رقصی 20 سال رئیس امنیت این اه اه اه اه اه این رژیم خ... قاتل بوده حرف امروز پس روحانی باید به دادگاه احضار بشه نه این که بشه رئیس جمهور این حرف امروز 2013 نوامبر 26 نوامبر 2013 من به تو دارم میگم جناب آقایی که مثلا اون راهنمودار گوش میدی که این آقایی که الان میرخصی برای شدن شدنش قاتله و باید به دادگاه تعقیب داده بشه این حرف امروز پروندشم مشخص رئیس امنیتی کشور بوده چرا مختاری کشته شده چرا پویان کشته شده جواب اینا رو چی بده اون با بازی هایی بود که در آوردن که احمد میدونید که داری شفر رو هر 28 ضربه به یه زن 28 ضربه چاقو کسی که با دوتا ضربه چاقو میتونی بکشید 28 ضربه مثل احمد کسوی آخه تا کی ما میخوایم سکوت کنیم در مقابل این همه جنایت پیروز عزیز پیروز عزیز پیروز عزیز پیروز عزیز دوشنبه طرف میگه که الان سی دیگه 500 دلار میده هر کی میخواد سی بشه 500 اگه با 500 دلار راضی که خامنه ای بهتون بده آقا تف به رو که مملکتتون و مردمتون و کشورتون عمرو با مایه 500 دلار بفروشید آمدید 30 سال قربت کشیدید محرومیت کشیدید الان شما هر کدوم وزیر وزیرو نخست وزیر وزیرو وکیل مجلس بودید در اینا این همه بدبختی و محرومیت کشیدید حالا با 500 دلار خودتو به فروشی یا اون آقای قیرتای اجنبی یا لابی درست کنه اینجا به قول آقای حسن دایی میگه که اینا فقط ذهن و مغز و همه وجودشون فقط پوله از نمیدونم کارنگی بگیرن از انترپرایز فاندیشن بگیرن پول بگه من و شما که پول نمیگیریم از کسی که من و شما م... آقای نگیریم به مردم پیروزیان بفرمو سلام به همه شما عزیزان حسن نباشید ممنون از ظهمماتتون خب دوستان صحبتهایی کردند مخصوصا دوستای اطمین عزیز و بارش عزیز به نکته اساسی اشاره کرد متاسفانه از دیگر دوستان مدت های زیادی اصلا نمی به اون نکته اساسی اشاره بکنه. امروز که، اوباما میاد با خوشحالی میگه که تولید بمبام برای ایران سفره و ظورمور خارجشون هم همین حرف رو میزنه. دوستایی زیادی هستند که بره در صحبت ها هست وارد میشیم. یاد میگیریم که این جمهوری ننگین آدمکش از 20 درصد غنی کردن اورانیوم، تن داده اون هم نه در قرار داد تن داده به سه حتی اکثر پنج درصد. و این را بعضی از امسان یا یوزر هایی که در هستن در روم هستن در روم های دیگر هم هی hey, جانبداری از این ظاهرن قرار داد که قرار داد نیست به قولی بهش میگن یک قول نامه تا شیش ماه من نمیدونم جهانگیر عزیز یا ا ادمینا دیگر دیگه کیانوش و دوستای دیگه که صحبت میکنن به این بازی شطرنج بین شرق و غرب یعنی به طور کلی الا شرق و غرب بگیم اما روسیه و چین و غرب انگلیس و آمریکا و فرانسه به بازی شطرنج اصلا اشاره نمیکنن آیا جمهوری نانگین اسلام سرمایه‌دار و خونخار سر خود به این جور جلسات میرن یا سواد این رو دارن اگر بگیم سواد این رو دارن که خنده داره اگر بگیم سر خود میرون بازم خنده داره به نظر من حتا و واهن نظرم کلا اینه که اینها بر در میدان بازی شطرنج مهرهی بیش نیستند این چار پنجتا تا قدرت عبر که چی بگم رژیم های جهانی بذارید از میکروفون ها هم صدای ما را بشنوند که میشنبند با ایجاد میدان های بازی چوگان سره گران جهانی مخصوصاً این زندانی به نام ایران را با چوگان و با چوبای چوگانشون در میدان شورزار به این بران بر دوست عزیز ادرامی یا ریفیق عزیز به این دسیسه های ساخته و پرداخته روسیه و چین آمریکا و انگلیس و فرانسه اشاره بکنید جمهوری اسلامی در مرام، مقام و قدرتی نیست که به خودی خود بتونه در این رابطه تصمیم گیری بکنه. نسوادی شده رو ناترافی شده ده. بنابراین اگر دقت بکنید بعد از فروکاشی شرق مخصوصاً روسیه شوروی سابق و چین کمونیست سابق که الان هم چین کمونیست ظاهر اون موقع هم ظاهر بود بر اساس تکزوی نقاط نفتخیز و دنیا را رو در روی خط استوا از مصر گرفته تا یمن تا ایران تا جاهای دیگر دونه دونه طرفداران شرق سابق را که بگیم شعوروی سابق و چین سابق دونه دونه حکومتاشون رو بر اساس جلوه دادن دیکتاتور بلبشوری راه انداختن که هنوزم که هنوزه در مصر و لیبی و یمن و مخصوصا مخصوصا سوریه کشتار وجود در ایران هم همینطور وجود داره که خود رژیم بزرگترین و قویترین قاتل مردم ملتهای ستمدیده ایرانه مخصوصا سیاسی هایی که در زندان ها تجاوز میشن و کشته میشن باز هم به اون نقشه قدیمی ننگین خودشون دارن با این بازی نو جدید شطرنج ادامه میدن که سر همین هایی که میان در میکروفون میگن زد جمهوری اسلامی هستند و برای اینکه عریض خالی نمونه اشاره میکنه برن اعدامم هست اما به طور و کلی عمره در همین پلتاک داره از جمهوری اسلامی جانب داره میکنه حالا امیدوارم در روم باشه با و بشنوه چون اسم نمیارم نمیخوام بحث دو نفره بشه در این رابطه این بازی خطرناکشون که در طول تاریخ وجود داره نه دلشون به شما سازمان شما ناتلشون به طور کلی طبقه کارگر و مردم دنیا میسوزه. اونها با این جلوه دادن بازی جدیدشون از هان عمومی مردم را که همون های خائنشون سایت ها و اطلاعات رو از مردم پنهان نگه میدارن رو میخوان جوری جلوه بدن مردم رو به طرف خودشون بکشن که بله ما انتخاباتمون مردمیه، رئیس جمهورمون مردمیه. حکومت عوض میخوام این کلمه رو به کار ببرم ننگین اسلامیمون مردمیه اینجوری جلوه میدن در راستای این توافقنامه که توافقنامه قرارداد نیست به یک صورت توافقنامه که به کوچه بازاری بگیم این قولنامه هست تا شیش ماه که این رژیم‌های جهانخار چین و روسیه و انگلیس و فرانسه و آمریکا بتونن برنامه‌های ننگین خودشون رو یه جوری راست و بکنن چرا برای خاطر اینکه آمریکا دیگه قدرت کشی به جایی رو نداره با اون اقتصاد ورشکسته خودش روسیه هم نمیخواد مستقیما باز هم ویتنامی به وجود بیاد که مجبور بشه به اونجا لشکر بکشه که مثلا دفاع بکنه از ویتنامی ها منظورا در رابطه با ایران افغانستان و ایرام چین هم به هیچ وجه نمیخواد وارد محرکه سلاح و اقتش اینجور چیزا باشه که چون از لحاظ استثمار و استثمار که نمیتونیم بگیم استثمار حقوق و کارگران بازار تولیدش رو بر اساس همون استثمار کارگران خودش انقدر ارزون کرده که داره یه بیلاخ بزرگی به غرب نشون میده و نشون داده و معفل هم شده کلی هم پول پزنداز کردی در این راستا چرا این دوستایی ما که صحبت میکنن این همه از جمهوری اسلامی انتقاد میکنن جمهوری اسلامی به قول آمیانه بگیم او را سنه نه جمهوری اسلامی پشیزی نیست کلوخ سنگی بیش نیست مخصوصا مخصوصا با اشاره به این رهبر نام رهبر که من عوض واقعاً واقعا چندشم میشه افرادی از این جمهوری اسلامی را اسمش رو بیارن این رهبر کسافتش رو شما اینقدر قدرت بهش میدید در بحثتون که این فلانیه که اینقدر دوزدیده اینقدر فلان کرده و اینقدر هم قدرت داره مگر امروز در دنیا میتونه یک نفر اینقدر قدرتمند باشه بدون داشتن اطرافیان خودش حالا در مورد همین جمهوری ننگینه خونخوار اسلامی ایران صحبت بکنیم که بدون این حامیان پاسدارش گردن کشان و آدمکشان مگر این آخوند پنجزاری میتونه حرفی بزنه کلگندش که اون خمینی لعین بود مگر رفزنجانی در بحثای خصوصی نمیزد. پس گردن خمینی میگفت مرده که موازه به خودت باشا تو رو من به اینجا رسوندم همون رفزنجانیش هم که یه جوری وابسته بسته به همین غربه دوستاره مراودات م به اقتصادی با آمریکاست با زرنگی خاصی خودش رو یه جوری کشیده کنار که کاسه کوزه الان سر اون نشکنه در رابطه با این قرارداد ننگین اتمی پایگاه یا های اتمی نه داشتن نیروگاه اتمی برای ایران و مردم ایران نف داره و نه نداشتنش. این یک عروسک خیمشب بازی خائنانه است که متاسفانه متاسفانه بعضی از این گروه ها و کمونیستای ما هم با پرروی تمام در میکروفون ها جانبداری از این جمهوری کثیف اسلامی میکنند و انگار فکر میکنن که کسایی که در روم نشستن بچه هستند یا بچهگانه فکر میکنن در صورت که کاملا برعکس خودشون بچه هستند و زیر چادر این فهمه هی ملت ملت ملت در صورت که طرف کمونیسته ادعا هم میکنه زده جمهوری اسلامیه با این وس میخواد سر خودش شیره به مال به قول آمیانه مثل کرد که سرش رو فرو بکنه به برف رژیمی که هر ساعت یک نفر رو اعدام میکنه با این برنامه وسیع نیروگاه اتمی و یا تولید نیروی اتمی برای خاطر اینکه در ایران لازمه چه برنامه شوم دیگری داره از اون صحبت بکنید برنامه شومش اینه که بر اساس نابود کردن اقتصاد و حتی نیروی گرما گاز و نفت و اینها که به طور کلی به تاراج میده حالا میخواد نیروگاه اتمی داشته باشه که ظاهرا نیروی برق و گرمای کشور را تهمین بکنه در صورتی که وقتی که حتی خاک و آب ایران را میفروشند این هزار فامیل حکومتی ننگین نیروگاه اتمیشم برای باز هم پول به جیب ریختن خودشون که فردا پس فردایینا رو داشتن به این کشورهای بغل دستیشون برق بفروشند وگرنه اینها حتی ما تحت ساختن بمب اتمی هم ندارند این ساختن بومبتامی و این آهنگ ها هم دوست عزیز حتمین های گرامی بازی بیش نیست که بارش عزیز یه تیکه اشاره کرد ولی امیغم توضیح نداد که همون اسرائیل وابسته به جمهوری اسلامی که نتنیاهو به نخست وزیری خودش ادامه بده و جمهوری اسلامی وابسته به همین اسرائیل هاست که بر سر کار بمونه برای مردم توضیح بدن که ما شاخشونه میکشیم به هم دیگه هم دیگه نون میگین پشت پرده چه ساخت و داریم به مردم که نمیان بگن بنابرین دوست عزیز من از شما خواهش میکنم در بحثاتون اشاره به همین قوای اجنبی خارجی من نه به خاطر اینکه کلمه ایران رو بگم من میگم ایران مثل زندانی که فقط و فقط مبارزین و طبقه کارگر رو داره سلاخی میکنه با سرمایدارانش کاری نداره چون خودش میخواد در طبقه بشینه بمونه و اون طبقه یه کارشون که ظاهرن سرمایدار, سرمایدار که نه من بازرگان سنتی اونها هم قبضه کردن بازار رو امروز هیچ کسی دیگه نمیتونه پولدار باشه مردم در این شرایط الان به طور رو کلی میبینی فحشا بیداد کرده و اعداما هر روز وجود داره هر روز وجود داره بعد میاد با کمال پر میکروفون میگیره میگه خوشحالیم که جلوگیری شد از جنگ این به نفع مردم شادمانی باید بکنن کدام شادمانی چرا باید اینجور آدم ها سر خودشون شیره بمانن فکر میکنن ما بچه ایم نمیدونیم اخبار رو نمیخونیم این ساخت و پاخت مخصوصا در رابطه با این نمایش خیمشب بازیه نیر اتمی و بومبتم و جلسات و جلسات بین المللی و اینجور چیزا رفتنها فقط و فقط گمراه کردن از هان عمومیه که فردا چه نقشه دیگری دارند خود آمریکا انگلستان که هیچ هیچ کدومشون ناراحت نیستن که این همه انسان در ایران تیر باران میشن شکنجه میشن مورد تجاوز قرار میگیرن هزاران هزار بچه و کودک مدرسه نمیتونن برن حتی خانواده هایی هستن که سر در قبرستان ها کسانی که پول دار بودن یه دینه آلچیق چهار دیواره ساخته یه شایی یه دینه لامپ برقم اونجا کشیده به عنوان یاد بوده جدش خانواده هایی دارن اونجا دارن زندگی میکنن که بتونن سقفی داشته باشن در امان از باران و طوفان و باد و آفتاب چطور ننگیشون نمیشین افراد این بدبختی‌ها رو بگم فقط بگی شادمانی البته منظور مدینه گرامی نیستا در این رابطه که در تا 6 ماه جنگ اگر قرار بود جنگ بشه از سر فعلا ایران برکنار شد این خوب خوشحالی همونه نه نب... جنگ ندام نه به جمهوری اسلامی نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم دوباره درود و بدرود به همه شما عزیزان میبخشید که من یک مقدار با تحکیم صحبت کردم ولی این قلبم رنجور و زخمی از این ستم ها و اعدام هاست و برای خاطر همین میگم ایران زندانی بیش نیست برای این مردم ستم دیده و مخصوصا طبقه کارگر. زنده باشید دوستان عزیز امیدوارم که صدا قطع نشده باشه. دلیر عزیز صدا قطع شده بود یا من الان دیسی شدم؟ مرسی ممنون و میکروفون واسه دوستان خوشحالم که تعداد زیادی نوبع گرفتن صحبت کنیم دوست داریم نظرات دوستانو بشنویم آرنیک عزیز بعد از پیروز فریاد اشکش بیدار، پاشا و امیدوار هستم دیگر دوستانم به جمع ن... این کسانی که نظر میدنند و صحبت صداشون رو به گوش بقیه میرسونن بپیوندند دوستان آقای آقای جانکری صریحا دیروز گفت که این قرارداد این معامله که ما یک قدم یک قدم اول است یک قدم اول منطقا خومن، خامنه خومنی و نمیدونم روحانی رو شروعش می کنن اونجا که سی و سال اونا این تکنیکشون بوده فرید دادن و دروغ گفتن و اینا ولی آقا جانکه دیگه که این یه قدمه که ما بتونیم ادامه بدیم درای در صحبت کردن باز باشید که ما بتونیم بعداً اهداف اصلی و مهم خودمون دست بیابیم حالا اون اهداف مهم و اصلی اونها در ایران چه هست؟ خب هر کسی نظری داره میتونن دوستان نوبر بگیرن بگن ما فقط میتونیم به پیش بینی کنیم و نظر بدیم که اهدافشون در ایران چی هست. و دوستان نگاه کنید وقاحت رو این مزدوران من میدونم قلب اکثر دوستان عزیزی که خودشون واقعا آخوزیشن واقعی رژیم هستند به درد آمده برای اینکه این وقاحت رو از کجا از حد گذاروندن که درست شدن مثل خامله ای در خارج از کشور هر کسی که مثلا میاد و از حقوق مردم دفاع میکنه و میگه این خزینه ها خزینه جنگ با عراق خزینه این رآکتورها و ها این عثوانی این اسر... برچسب اسرائیلی میزنن روی مردم رو خفه ببینید واقعا رو به کجا رسوند که میخوان به صدای واقعی مردم داخل کشور رو که فقط در خارج میشه بلند بشه برای اینکه در داخل که صدا قطع میکنن هم نفسو در سینه حب میبرن. کسی, س... کسی صداش نمیتونه در داخل کشور و اگر در خارج افرادی هستن که دارن صدای اون مردمون به گوش جانی ها این ها این مثل اسرائیل این... درست برچه که خامنه ای میزنه مردمون میدازه زندان سی و سال رژیم همین تکنیکش بوده